السلام علی ولی الله و حبیبه و خلیلهی و نجیبه و صفیهی و ابن صفیه این ارزش ها رو می خلیل خدا بودی صفیه خدا بودی پسر صفیه خدا بودی ولی بودی نجیب بر الهی بود این ارزش ها چی و عل الحسین شهید الحسین شهید مظلوم یعنی چی یعنی تو با این مقامات در میان مردمی بودی که مظلوم واقع شدی تا حدی که کشتنه شهید شدی یعنی چی خوب دقت بفرمایید یعنی این عمل من پشتوانه فکری ارزش عمل رو معین میکنه دیگه چگونه راجع به این کار دارم فکر میکنم یه وقت رو روی حرم آقا ایستادم دارم این زیارات نکنم فقط برای اینکه که به من بدن یه وقت دارم شعار فکریم خط فکریم ارزشهای الائی حاکمه بر عالم را اعلام میکنم یعنی آی دنیای بشریت یه خطی پیدا شد به نام اسلام تحریفی بنی اومیه و خاندانش خط تحریفی اسلامی و خلافت اونچنانی چه میخواست عمل کنه؟ می‌خواست یزید رو بر مردم بنشونه کار تا به کجا برسونه فکرش رو بکنید فرض کنید ما نشیعه نسنی ما فعلا اصلا بحثی از این جهت نداریم یه محقق اسلام شناس خارج از دنیای اسلام میخواییم راجب اسلام نظر بدیم یه مستشرقیم. نگاه میکنیم تاریخ اسلام یزید چه کار است؟ شراب خاریش؟ میگو ساریش فساد و آلودگی تا اون حد که تاریخ تبری می نویسد ای از سران و پیرمردای مدینه پیکی رو معین کردن گفتن دهید شام خبر بیارید چیه یه خبرهایی از شام برای ما میاد پیک رفت شام و برگشت خلاصه خبری که آورده از تاریخ تبری نقل می مجملش اینه به صورت خیلی فشرده نقل به معنا میگه مردم از پیش کسی میام که ادعای خلافت و امیرالمؤمنینی را میکند، کند همینقدر بگم کاخی دارد در حیات این کاخ استخری پر از شراب دارد با محارم خود در این استخر پر از شراب شنا می کند زنا می کند مست می شود لاشهٔ متعفنش رو از استخر شراب در حال غرق شدنه بیرون میکشند با سگ و میمون کنار استقر مشغول بازی موقع نماز جماعت هم میاد در مهراب عبادت می ایستد که مردم به او اقتدا کنند و جمعیت هم فوج فوج به او سلام میدهند السلام علیکم یا امیر المؤمنین یا خلیفة رسول الله اینو میخواستن به گرده مردم شما خیال می‌کنید امروز دنیا حتی دنیای غیرشیه جرأت نمی‌کنه از یزید امایت کنه به جهت کاریست که عبی عبدالله کرد به جهت واقعی آشورا و پیام رسانی عزت زینب کبرا و امام سجاد و غیره بود وگرنه بدتر از مسیحیت تحریفی و یهود تحریفی اسلام تعریف تحریف میشد اسلام مدیون علی و آل علی است که به این صورت باقی بمونه و شما در قالب زیارت میاد کنار قبرش میستی میگی تویی که صفی بودی ولی بودی نجیب بودی عبیب بودی خلیل بودی مظلوم واقع شدی خب اگه مظلوم واقع شد ظالم باید باشه تا ظالم نباشه مظلوم که معنا نداره خب پس ظالم کی بود تو شهید شدی خب اگه شهید شدی چه کسی تو رو شهید کرد پس اونهایی که در مقابل تو ایستادن اونها ظالم بودن دوستایی بود ظالما باشی با می‌ذاری ها باشی اگه میخوای از ظالم بگوییی بگو خب آقا بوده بود توی حرام جناب عدی در سوریه مکانو معرفی کنه هاذا مرغد سيد ناغورش قتل او سيد نا معاویه هذا مرغد سيد ناغور این ملغد آقای ما حجره قتل او, او را کشت سید نا آقای ما معاویه گوه بله هم قاتل شده آقای شما هم مسئول شده آقای شما خب اگه قاتل حقه پس مسئولا حقه اگه نه حقه پس قاتل حقه این فکر است که توسط داده شده است وقتی فکری انسان گرفتی هر چیز دیگه رو با بگیری میتونی بگیری